اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما به نام خداوند بخشنده بخشایشگر ای پیامبر تقوای الهی پیشه کن و از کافران و منافقان اطاعت مکن که خداوند عالم و حکیم است و اتبع ما یوحا ایلیک من ربک این الله کان بما تعملون خبیرا و از آنچه از سوی پروردگارت به تو وحی می شود پیروی کن که خداوند به آنچه انجام میدهید آگاه است و توکل علال الله وکفا بالله وکیلا و بر خدا توکل کن و همین بس که خداوند حافظ و مدافع انسان باشد ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله الله یقول الحق و هو یهدی سبیل خداوند برای هیچ کس دو دل در درونش نیافریده و هرگز همسرانتان را که مورد زهار قرار میدهید مادران شما قرار نداده و نیز فرزند های شما را فرزند حقیقی شما قرار نداده است این سخن شماست که به دهان خود میگویید سخنی باطل و بی پایه، اما خداوند حق را میگوید و او به راه راست هدایت میکند. ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين و وليس عليكم جناح فیما اخطعتم به ولكن, ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحیما آنها را به نام پدرانشان بخوانید که این کار نزد خدا عادلانه است و اگر پدرانشان را نمی شناسید آنها برادران دینی و موالی شما هستند اما گناهی بر شما نیست در خطاهایی که از شما سر میزند و بی توجه آنها را به نام دیگران صدا میزنید ولی آنچه را از روی امد میگویید مورد حساب قرار خواهد داد و خداوند آمرزنده و رحیم است النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أنبهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين من المؤمنین والمهاجرین إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مستورا پیامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است و همسران او مادران آنها محسوب می شوند و خیشاوندان نسبت به یک از مؤمنان و مهاجران در آن که خدا مقرر داشته اولا هستند مگر اینکه بخواهید نسبت به دوستانتان نیکی کنید و سهمی از اموال خود را به آنها بدهید این حکم در کتاب الهی نوشته شده است و اذ اخذنا من ومن نوح و منک و من نوح و ابراهیم و موسی و عیس بن مریم و منهم میثاقا غلیبا به خاطر آور هنگامی را که از پیام بران پیمان گرفتیم و همچنین از تو و از نوح و ابراهیم و موسی و عیسی بن مریم و ما از همه آنان پیمان محکمی گرفتیم که در ادای مسئولیت تبلیغ و رسالت کوتاهی نکنند عن صدقهم عذاباً به این منظور که خدا راستگویان را از صدقشان در ایمان و عمل صالح سؤال کند و برای کافران از آبی دردناک آماده ساخته است. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمه الله عليكم اجأتكم جاءتكم جنود فارسل عليهم ريحا وجنودا لم ترواها وكان الله بما تعملون بصيرا اي كساني كه ايمان آورديد نعمت خدا را بر خود به یاد آورید در آن هنگام که لشکر‌های عظیم به سراغ شما آمدند ولی ما باد و طوفان سختی بر آنان فرستادیم و لشکریانی که آنها را نمیدیدید. و به این وسیله آنها را در هم شکستیم و خداوند همیشه به آنچه انجام میدهید بینا بوده است ان جاءكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذاعت الابصار وبلغت واذاعت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون خاطر بیاورید زمانی را که آنها از طرف بالا و پایین شهر بر شما وارد شدند و مدینه را محاصره کردند و زمانی را که چشمها از شدت وحشت خیره شده و جانها به لب رسیده بود و گمانهای گوناگون بدی به خدا می پردید آنجا بود که مؤمنان آزمایش شدند و تکان سختی خوردند وَاِذَا يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا و نِز خاطر اورید زمانی را که منافقان و بیمار دلان میگفتند خدا و پیامبرش جز وعده های دروخین به ما ندادهند و ایز قالت طائفت منهم یا اهل یثرب لا مقام لكم فرجعو و یستأذن فریق منهم النبی يقولون يقولون این بيوتنا عورت وما هي هی بعوره؟ این و نیز به خاطر آورید زمانی را که گروهی از آنها گفتند ای اهل یسر اینجا جای توقف شما نیست به خانه های خود بازگردید و گروهی از آنان از پیام بر اجازه بازگشت میخواستند و میگفتند خانه های ما بیحفاظ است در حالی که بی‌حفاظ نبود آنها فقط می‌خواستند از جنگ فرار کنند ولو دخلت عليهم من اقطارها ثم سئلوا الفتنه لآتوها, لاتوها وما تلبثوا بها الا يسرا آنها چنان بودند که اگر دشمنان از اطراف مدینه بر آنان وارد می‌شدند و پیشنهاد بازگشت به سوی شرک به آنان می میپذیرفتند و جز مدت کمی برای انتخاب این راه درنگ نمی کردند. ولقد كانوا الله من قبل لا يولون وكان در حالی که آنان قبل از این با خدا عهد کرده بودند. که پشت به دشمن نکنند و عهد الهی مورد سؤال قرار خواهد گرفت. قل الفرار من الموت او القتل لا تمتعون بگو اگر از مرگ یا کشته شدن فرار کنید سودی به حال شما نخواهد داشت و در آن هنگام جز بهره کمی از زندگانی نخواهید کرد. الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمه ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. بگو چه کسی میتواند شمارا؟ در برابر اراده خدا حفظ کند اگر او بدی یا رحمتی را برای شما اراده کند و آنها جز خدا هیچ سرپرست و یاوری برای خود نخواهند یافت قد یعلم الله المعوقین منکم والقائلین لإخوانهم هلوم مإلينا خداوند کسانی که مردم را از جنگ باز می‌داشتند و کسانی را که به برادران خود می‌گفتند به سوی ما بیایید به خوبی می‌شناسند و آنها مردمی ضعیفند و جز اندکی پیکار نمی‌کنند.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 اولائی لم یؤمنون فأحبط الله اعمالهم وكان ذلك على الله یسیرا آنها در همه چیز نسبت به شما بخیلند و هنگامی که لحظات ترس و بحرانی پیش آگد میبینی آنچنان به تو نگاه میکنند و چشمهایشان در حدقه میچرخرد که گویی میخواهند غالب توهی کنند اما وقتی حالت خوف و ترس نشست های تند و خشن خود را با انبوهی از خشم و عصبانیت بر شما می‌گشایند و سهم خود را از قنایم مطالبه میکنند. در حالی که در مال حریص و بخیلند آنها هرگز ایمان نیاوردند از این رو خداوند اعمالشان را حبت و نابود کرد و این کار بر خدا آسان است يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتی الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم كانوا فيكم ما إلا قليلا. آنها گمان می هنوز لشکر احزاب نرفته اند. و اگر برگردند از ترس آنان دوست میدارند در میان اعراب بادی نشین پراکنده و پنهان شوند و از اخبار شما جویا گردند و اگر در میان شما باشند لقد كان لكم في رسول الله اصوات حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكروا الله كثيرا مسلما برای شما در زندگی رسول خدا سرمشق نیکوی بود. برای آنها که امید به رحمت خدا و روز رستاخیز دارند و خدا را بسیار یاد می کنند. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما اما مؤمنان وقتی لشکر احزاب را دیدند گفتند این همان است که خدا و رسولش به ما وعده داده و خدا و رسولش راست گفتند و این موضوع جز بر ایمان و تسلیم آنان نیفزود من المؤمنين رجال صدق ما عاهد الله عليه منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا در میان مؤمنان مردانی هستند که بر سر عهدی که با خدا بستند صادقان ایستاده اند بعضی پیمان خود را به آخر بردند و در راه او شربت شهادت نوشیدند و بعضی دیگر در انتظارند و هرگز تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود ندادند. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم ان الله كان غفورا الرحيم. هدف این است که خداوند صادقان را به خاطر صدقشان پاداش دهد. و منافقان را هرگاه اراده کند عذاب نماید یا اگر توبه کنند توبه آنها را بپذیرند چرا که خداوند آمرزنده و رحیم است ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا و خدا کافران را با دلی پر از خشم بازگرداند، بیان که نتیجه از کار خود گرفته باشند، و خداوند در این میدان مؤمنان را از جنگ بی نیاز ساخته و پیروزی را نصیبشان کرده، و خدا قوی و شکست ناپذیر است، و آذلالذین ظاهرهم من اهل الكتاب من صياصیم و قدف في قلوبهم و قدف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون و تأسرن فريقا. و خداوند گروهی از اهل الكتاب را که از آنان حمایت کردند از قلعهای محکمیشان پا این کشید. و در دلهایشان رعب افکند و کارشان به جایی رسید که گروهی را به قتل می رسندید و گروهی را اسیر می کردید و اورثكم ارضهم و دیارهم و اموالهم و ارضا لم تطعوها و کان الله علی كل شیئن قدیرا و زمینها و خانه ها و اموالشان را در اختیار شما گذاشت و همچنین زمینی را که هرگز در آن گام ننهاده بودید و خداوند بر هر چیز تواناست یا ای ای قل بگو به همسرانت اگر زندگی دنیا این کنتون نتردن الحیات الدنیا و زینتها فتعالین فتعالین امتع کن و كن سراحا جمیلا ای بر به همسرانت بگو اگر شما زندگی دنیا و زرق و برق آن را میخواهید. بیایید با هدیه ای شما را به من سازم و شما را به طرز نیکویی رها سازم و این کنت تریدن الله و رسوله و الدار الاخره و الدار الاخرة الله اعد للمحسنات فان الله للمحسنات منكم اجرا و اگر شما خدا و پیام برش و سرای آخرت را می‌خواهید، خداوند برای نیکو کاران شما پاداش عظیمی آماده ساخته است یا نساء نبی من یأتی من کن بفاخشت مبینتی و يضاعفت العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسرا ای همسران بيامبر هر کدام از شما گناه آشکار و فاحشی مرتکب شوید عذاب او دو چندان خواهد بود و این برای خدا آسان است و من یقنت من کنن لله و رسوله و تعمل صالحا نؤتها نؤتها اجرها مرتین و اعتدنا لها رزقا كريما. و هر کس از شما برای خدا و پیام برش خضوع کند و عمل صالح انجام دهد پاداش او را دو چندان خواهیم ساخت. و روزی پر ارزشی برای او آماده کرده ایم نساء نبی لستنک احد من النساء این اتقیتن فلا تخضعن بالقول فيطمع لذی فی قلبه مرض و قولا معروفا ای همسران پیامبر. شما همچون یکی از زنان معمولی نیستید اگر تقبا پیشه کنید پس به ای حوص انگیز سخن نگویید که بیمار دلان در شما تمع کنند و سخن شایسته بگویید و قرن فی بیوت ولا تبرجن تبرج تبر و و الصلاة و آتین الزکاة و الله و رسوله اینما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و تطهيرا. تطهیرا و در خانه های خود بمانید و همچون دوران جاهلیت نخستین در میان مردم ظاهر نشوید و نماز را برپا دارید و ذکات را بپردازید و خدا و رسولش را اطاعت کنید خداوند فقط میخواهد پلیدی و گناه را از شما اهل بیت دور کند و کاملا شما را پاک سافد و اذکرن ما یتلا فی بیوت من آیات الله والحکمه این الله کان لطیفا خبیران آنچه را در خانه های شما از آیات خداوند و حکمت و دانش خوانده می شود یاد کنید، خداوند لطیف و خبیر است این المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين, والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والحافظين فروجهم والحافظات والذائرين الله كثيرهم والذائرات أعد الله لهم أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما به یقین مردان مسلمان و زنان مسلمان مردان با ایمان و زنان با ایمان مردان مطیع فرمان خدا و زنان مطیع فرمان خدا مردان راستگو و زنان راستگو مردان صابر و شکیبا و زنان صابر و شکیبا مردان با خشوع و زنان با خشوع مردان انفاق کننده و زنان انفاق کننده، مردان روزدار و زنان روزدار، مردان پاک دامن و زنان پاک دامن، و مردانی که بسیار به یاد خدا هستند، و زنانی که بسیار یاد خدا می خداوند برای همه آنان مغفرت و پاداش عظیمی فراهم ساخته است، و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضا الله و رسوله امراً این یکون له ملخیرت من امرهم و من يعص الله و رسوله فقد ضل ضلالاً مبینا. هیچ مرد و زن با ایمانی حق ندارد هنگامی که خدا و پیام برش امری را لازم بدانند اختیاری در برابر فرمان خدا داشته باشد و هرکس نافرمانی خدا و رسولش را کند به گمراهی آشکاری گرفتار شده است و اذ تقول للذی انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله واتق الله وتخفي في نفسك ن الله مبديه وتخشى الناس وتخشى الناس والله احق ان تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكيلا لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائهم اذا اذا قضو منهن نوطرا و کان الله مفعولا به خاطر بیاور زمانی را که به آن کس که خداوند به اون نعمت داده بود و تو نیز به اون نعمت داده بودی به فرزند خانده ات زید می گفتی همسرت را نگاه دار و از خدا بپرهیز و پیوسته این امر را تکرار می کردی و در دل چیزی را پنهان می داشتی که خداوند آن را آشکار می کند و از مردم می در حالی که خداوند سزاوارتر است که از او بترسی هنگامی که زید نیازش را از آن زن به سراورد و از او جدا شد ما او را به همسری تو در تا مشکلی برای مؤمنان در ازدواج با همسران پسرخواندههایشان هایشان هنگامی که طلاق گیرند نباشد و فرمان خدا انجام شدنی نیست و سنت غلط تحریم این زنان باید شکسته شود ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خَلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا هیچ گونه منعی بر پیامبر در آنچه خدا بر او واجب کرده نیست این سنت الهی در مورد کسانی که پیش از این بوده اند نیز جاری بوده و فرمان خدا روی حساب و برنامه دقیقی است ولا الله و پیامبران پیشین کسانی بودند که تبلیغ رسالت الهی می کردند. و تنها از او میترسیدند و از هیچ کس جز خدا بین نداشتند و همین بس که خداوند حسابگر و پاداش دهنده اعمال آنهاست ما کان محمد ابا احد من رجالكم ولكن ولكن رسول الله وقات من نبيين الله بكل شيء محمد پدر هیچ یک از مردان شما نبوده و نیست ولی رسول خدا و ختم کننده و آخرین پیامبران است و خداوند به همه چیز آگاه است یا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمنوا ٱذْكُرُواْ الله ذِكْرًا كثيراً ای کسانی که ایمان آورده اید خدا را بسیار یاد کنید وسبحوه بکرتا و و صبح و شام او را تسبیح گویید و الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّور وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا او کسیست که بر شما درود و رحمت میفرستد و فرشتگان او نیز برای شما تقاضای رحمت میکنند تا شما را از ظلمات جهل و شرک گناه به سوی نور ایمان و علم و تقوا رهنمون گردد او نسبت به مؤمنان هموار مهربان بوده است تحتهم يوم یلقون هو سلام واعد لهم اجرا كریما تهیت آنان در روزی كه او را دیدار میکنند سلام است و برای آنها پاداش پرارزشی فراهم ساخته است <تصفيق> يا ايها النبي اننا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ای پیامبر ما تو را گواه فرستادیم و بشارت دهنده و انذار کننده و داعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا و تو را دعوت کننده به سوی خدا به فرمان او قرار دادیم و چراغی روشنی بخش و بشارت به لهم من الله فضلا كبيرا و مؤمنان را بشارت ده که برای آنان از سوی خدا فضل بزرگی است ولا تطع الكافرین والمنافقین ودع اداهم وتوکل علی الله و الله بالله وکیلا و از کافران و منافقان اطاعت مکن و به آزارهای آنها اعتنام من ما بر خدا توکل کن و همین بس که خدا هامی و مدافع تو است. یا ایوها الذين آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ثم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 هنگامی که با زنان با ایمان ازدواج کردید و آنان را قبل از هم بستر شدن طلاق دادید، ادعی برای شما بر آنها نیست که بخواهید حساب آن را نگاه دارید. آنها را با هدیه مناسبی بحرمند سازید و به طرز شایسته رهایشان کنید. يا أيها النبي إن أحلال لك أزواجك التي التي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما وما ملكت يمينك مما الله عليك وبنات عمك وابنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأه مؤمنه ان وهبت نفسها ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك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 ما همسران تو را که مهرشان را پرداخت ای برای تو حلال کردیم و همچنین کنیزانی که از طریق غنایمی که خدا به تو بخشیده است مالک شده ای و دختران اموی تو و دختران امهها ها و دختران دایی تو و دختران خاله ها که با تو مهاجرت کردند و نیز زن با ایمانی که خود را به پیام بر ببخشد و مهری برای خود نخواهد چون که پیامبر بخواهد او را به همسری برگزیند اما چنین ازدواجی تنها برای تو مجاز است نه دیگر مؤمنان ما می‌دانیم برای آنان در مورد همسرانشان و کنیزانشان چه حکمی مقرر داشته ایم. این این به خاطر آن است که مشکلی در ادای رسالت بر تو نباشد و از این راه حامیان فزون تری فراهم سازی و خداوند آمرزنده زنده و مهربان است ترجی من تشاؤ من هن و تقوی ایلیک من تشاء و منی ممن من من عزلت فلا جناح عليك ذلك ادنا ان تقر اعينهم ولا يحزنوا ويرضون بما آتيتهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما هر يك از همسرانت را سرا بخاهين به تأخیر اندازی و هر کدام را بخواهی نزد خود جای دهی و هرگاه بعضی از آنان را که بر کنار ساخته ای بخواهی نزد خود جای دهی گناهی بر تو نیست این حکم الهی برای روشنی چشم آنان و اینکه غمگین نباشند و به آنچه به آنان میدهی همگی راضی شوند نزدیکتر است و خدا آنچه را در قلوب شماست میدانند بخودوند دانا و بردبار لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن ولا تبدل بهن من أزواج ولو ولو اعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك و الله علا بعد از این دیگر زنی بر تو حلال نیست و نمی همسرانت را به همسران دیگری مبدل کنی. هرچند جمال آنها مورد توجه تو واقع شود مگر آنچه که به صورت کنیز در ملک تو درآید و خداوند نازر و مراقب هر چیز است یا ايها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا نبي الا ان يؤذن لكم الا ان يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين اليه ولكن اذا دعيتم فادخلوا ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أَن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه ولا أن تنكحوا من بعده ابدا این كان عند الله عظیما. ای کسانی که ایمان آورده اید در خانه های پیامبر داخل نشوید مگر به شما برای صرف قضا اجازه داده شود در حالی که قبل از موعد نیایید و در انتظار وقت غذا ننشینید اما هنگامی که دعوت شدید داخل شوید و وقتی غذا خوردید پراکنده شوید و بعد از صرف غذا به بحث و صحبت ننشینید این عمل پیامبر را ناراحت می نماید ولی از شما شرم می کند و چیزی نمی گوید اما خداوند از بیان حق شرم ندارد و هنگامی که چیزی از وسایل زندگی را به عنوان آریت از آنان همسران پیامبر میخواهید از پشت پرده بخواهید این کار برای پاکی دلهای شما و آنها بهتر است و شما حق ندارید رسول خدا را آزار دهید و نه هرگز همسران او را بعد از او به همسری خود درآورید که این کار نزد خدا بزرگ است این شیئا او تخفوه الله كان بكل شیء اگر چیزی را آشکار کنید یا آن را پنهان دارید خداوند از همه چیز آگاه است لا جناح عليهم في آبائهن وَلَا لا ولا و لا اخوانهن و وَلَا ولا ابناء اخواتي ولا نسائهم ولا ما ملكت ولا ما ملكت ايمانهم واتقوا الله ان الله كان على كل شيء شهيدا برآنان همسران بيامبر گناهی نیست در مورد پدران و فرزندان و برادران و فرزندان برادران و فرزندان خواهران خود و زنان مسلمان و بردگان خویش که بدون هجاب و پرده با آنها تماس بگیرند و تقوای الهی را پیشه کنید که خداوند نسبت به هر چیزی شاهد و آگاه است ان الله وملائكته این على نبي یا أي والَّن آمنوا صّ عليه وسللی و خدا و فرشتگانش بر پیام درود میفرستند عچسانی که ایمان آورده بر او درود فرستید و سلام گویید. و کاملا تسلیم فرمان او باشید این الذین يؤذون الله و رسوله لعنهم الله في الدنیا والآخرة لعنهم الله في الدنيا والآخرة و لهم عذابا مهینا آنها که خدا و پیامبرش را آزار می دهند خداوند آنان را از رحمت خود در دنیا و آخرت دور ساخته و برای آنها عذاب خوارکننده ای آماده کرده است والذین يؤذون المؤمنین والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا فقد احتملوا بهتانا و اثما و آنان که مردان و زنان با ایمان را به خاطر کاری که انجام نداده‌اند، آزار میدهند، بار بهتان و گناه آشکاری را به دوش کشیده‌اند. یا <تصفيق> ایها النبی قل لازواجک و ونساء المؤمنین يدنین يدنین علیهن من جلابیبین د كنا الله ای پام به همسران و دخترانت و زنان مؤمنان بگو جلبابها روسری های بلند خود را برخیش فرو افتنند این کار برای این که شناخته شوند. و مورد آزار قرار نگیرند بهتر است خداوند هموار آمر رحیم است لئی لم ینتهی المنافقون والذین فی قلوبهم مردون والمرجفون والمرجفون فی المدینه لنغرینک اگر منافقان و بیمار دلان و آنها که اخبار دروغ و شایعات بی اساس در مدینه پخش میکنند، دست از کار خود بر ندارند تو را بر ضد آنان میشورانیم سپس جز مدت کوتاهی نمیتوانند در کنار تو در این شهر بمانند ملعونین، اینا ما ثقیفون، آخذه و قتیلو تقتیلا. و از همه جا ترد می و هر جا یافته شوند گرفته خواهند شد و به سختی به قتل خواهند رسید. سنت الله فی الذين خلو من قبل ولن تجد لسنت الله تبدیلا این سنت خداوند در اقوام پیشین است و برای سنت الهی هیچ گونه تغییر نخواهی یافت یسأل کن ناس عن الساعة قل انما علمها عند الله و ما يدريك لعل الساعه تكون قريبا مردم از تو درباره قیامت سوال میکنند بگو علم آن تنها نزد خداست و چه میدانی شاید قیامت نزدیک باشد ان الله لعن الكافرين واعد لهم سعيرا خداوند کافران را لعن کرده و از رحمت خود دور داشته و برای آنان آتش سوزاننده ای آماده نموده است در حالی که هموار در آن تا ابد میمانند و ولی و یاوری نخواهند یافت یومت قلب وجوه هم فی النار یقولون یا لیتنا اطعن الله و اطعن در آن روز که صورتهای آنان در آتش دگرگون خواهد شد از کار خیش پشیمان میشوند و میگویند گویند ای کاش خدا و پیامبر را اطاعت کرده بودیم و, و, و میگویند پروردگارا ما از سران و بزرگان خود اطاعت کردیم و ما را گمراه ساختند ربنا آتیم ضعفین من العذاب ول عنهم لعنا کبیرا پروردگارا آنان را از عذاب دو چندان ده و آنها را لحن بزرگی فرما یا ایوها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسی فبرعه الله فبرعه الله مما قالو عند الله وجیها. ای کسانی که ایمان آورده اید همانند کسانی نباشید که موسی را آزار دادند و خداوند او را از آنکه در حق او میگفتند مبرا ساخت و او نزد خداوند آبرومند و گرانقدر قدر بود یا ایوها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا ای کسانی که ایمان آورده اید تقوای الهی پیش کنید و سخن حق بگویید يصلح لكم اعمالکم و یغفر لکم و من يطع الله و فقد فاز فوزا تا خدا کارهای شما را اصلاح کند و گناهانتان را بیامرزد و هر کس اطاعت خدا و رسولش کند به رستگاری و پیروزی عظیمی یافته است إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أي يحملها فأبين أي يحملها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظل من ما أمانة تأهود تکلیف و ولایت الهی را بر آسمان‌ها و زمین و کوخ ها داشتیم آنها از حمل آن سر برتافتند و از آن هراسیدند اما انسان آن را بردوش کشید او بسیار ظالم و جاهل بود چون قدر این مقام عظیم را نشناخت و به خود ستم کرده ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحیما هدف این بود که خداوند مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرک را از مؤمنان جدا سازد و آنان را عذاب کند و خدا رحمت خود را بر مردان و زنان با ایمان بفرستد خداوند هموار آمرزند و رحیم است